بلنا. برای گرفته برای ختم قرآن حدیث وجود دارد و اگر حس برای نگرفتن و این عذاب آمده که برای نگرفتن مردم مسجد نور همین دارن یه را تخریم میکنند باعث ناراحتی میشون برای گرفتن حدیث نیست با این حالت در مسجد نور شده این ختم بدعت هست ناجائزه این حالت میشتاب که انجا غاغ کردند چرا ختم جا گرفته نمیشه اگر این تا این حد ورسه این مرد اینقدر اهمیت بدن این ناجائز و حرام میشه این وقتی شما اینقدر اهمیت میدید که باید ختم گرفته بشه باید جلسه گرفته بشه باید ما اینجا باشیم حضوریم حالاتی که ما ضرر کردی با این اعتقاد این بدعت و حرامه. پس توبه باید, باید بکنی شما آیه پیامبر جلسه ختم گرفته اند نه آیه صحابه جلسه ختم نگرفتند آیه تابعین چه جلسه گرفتیان نه فصره ما میگیری ما چون که اینجا قران ختم میشه بعد خاتم قرآن دعا فزیرفته میشه کسی دعا میکنه به خاطری که دعای قبول میشه فقط حد دعا هست بیشتر نه و با به خاطر اینه که خب چرا علما اهمیت میدن به خاطری که بعضی افراد بی‌سواد یا نمی دونن کنن ها دیگه حالا اینجا میشوینن اس میشه از خدا یاد میشه شاید همون شب بیداری معبرس و خاطر حلقه ذکری که و خاطر الله رب العالمین شده اما اگر کسی میتونه و توانایی داره تلاوت بکنه بهامو لیل بکنه اتحادو بکنه بره خونی بشینه خود بنده در هی جلسه خاطر شرکت نمیکنه فقط جای که نماز میکنه، جای که نماز میخونه اونجا تاخیر میشونه باز میرن اما از این واسه و من نمیرم نه از رو صالح من نمیرم در جلسات مختلف را شکر کنن حتی خود بندر رو دعوت می دن جلسات دور بیمواشر اما نرفتا قبول هم نکنم امسال هم گفتن بام کشت گفتن بیا نرفتن جدی گفتن نمی را به این اهمیتی حالا شروع شده تا اینجا تخریم شروع شده در فضاهای مجازی دارن لعنت می کنه هم دیگر رو برای استغفار بخونید. رو یک بدعات این همه توهین و تخریب و لعنت از کجا اینها میگیرن؟ چنگیز در اینها ها وجود داره اینجوری نیست بعد خدا رو مد نظر قرار بدید برای جلسه خاطر بخاطر همون دعایش ارزش داره و بخاطر شویداری بخاطری که الله ما اینجا که میدار میمونی حلقه ذکر هست حلقه ذکر هست و علت جواز همین این حلقه ذکر هست. نام الله رب العالمین گرفته میشه از, از الله تعریف میشه بزرگی الله بیان میشه از آخرت گفته میشه فرشتها شرکت میکنن الله رب العالمین این این حلقه رو دوست داره نگفتی فگیر گفتی من دوست دارم این حلقه رو این فقط یونو میشه از بدعت بیرون میکنه جوازش در حدی بی که فقط ما بگیم جایزه بگیم لازمه حتی باید کار بشه اگر نشد ما ضرر کردیم اگر نشود ما حالا جگه ویلا شدید اینجا اگر چنین انگیزه شما داری این اعتقاد شما هست این بدعت هست و باید علماء ترکش بکنن شما حتی اینجا کردیده باید علماء ترخیب کنم و بگم به مردم که این کار درست نیست ما میگیم جایزه در حد جواز جایزه در حد جواز به خاطر حد حدیث تا خلی صحیح اونا میخونم تا کسی دیگر ازی حرفای من سوء استفاده نکنه نگه فلانی گفته بیدعته به طمع مانا بدعت زمانی میشه که این کارو لازم بگیرن مانند حالا ما لازم گرفتیم الا ناراها داری میشید داری غوغا میکنن اینجوری لازم تا این ناجائزه ارتضا معالمی نظم هست و بیتحقی در غیر این صورت جواز هست که جواز داره کسی نشست از الله یاد کر جواز داره دلیلش کجا هست؟ دلیل هم میگن داخل صحیح بخاری کتاب و دعوات کتاب و دعوات آخر کتاب و دعوات صحیح بخاری حدیثی از تمیشه برادر تبلیغی بیخونه جایی حلقه زکر باشه فرشته ها جمع میشن برمیگردن الله میگه چیکار میکنن تسبیح میگن تحمید میگن تکبیر میگن سبحان الله الحمدلله اینها رو میگن و نکن، بزرگی الله رو بیان میکنن فرشته ها میگردن الله میگه کجا بودی میگه حلقه ذکری بوده یاد شما بزرگی شما بیان شده تعریف شما شده تسبیح شما شده چه میخواستن به از چه دوری میجستان از جهنم دیدن یعنی الگ مقالمی که اللہ رب العالی با انها می کنن. بعد از اون اللہ میفرمایند که اینها رو من بخشیدم این رو بخشیدم پس این حدیث اینی خود جلسه به ایمانه اشکال نداره جائزه اما لازم گرفتن جایز نیست همین قدر پس این هم غوغان کسانی که این دارن و بد بیرا گفتن درن تورک نماز بخونن توبه بکنن ما داریم بر یک بیتعد فاپشاری می